از امام هادی علیه السلام باز تو حف خوب دقت بفرمایید ان الغلبه مالک لجميع الحواس الحواس قلب مالک است برای همه حواس ها چشم یه حس دیگه قلب میتونه مالکش باشه به چه صورت وقت مراقبه چجوری بشه قلب مؤمن هست یا نیست اگه قلب مؤمن شد ایمان که عمل قلب است که امام میفرماد اون ایمان که عمل قلبه اگر خالص شد میشه برای خدا پس نگاه میشه برای چی میشه برای خدا لذا تا چشمش به نامحرم افتاد میگه خدا نمیخواد ناراحت میشه سرشو میندازه پایین ببینید چقدر فرق میکنه یه وقت نگاه میکنه چشمش میفته به نامهرم میگه در فقه گفتن از نظرتون لک فقه گفته راست میگه میگه از نظرتون اولالک یعنی چی؟ یعنی چشم افتاد اب نداره شما نمیخواسته نگاه کنید آقا از نظرتون لک میگه خب چشمم افتاد اختیاری نبود ناخداغا چشمم افتاد ولی ایمان حالا نقصان ایمان اینجاست, زیادی ایمان اینجاست. مؤمنه قبول داره حرامه فوری سرشان میندازه پایین اما اگر نقص ایمان کامل باشه حالتش چیه خدایا چرا باید چشمان به نامحرم بیافته اصلا از این که به نامحرم افتاد واقعا رنج میبره اما کسی دیگه چشمش نامحرم میخوا حرام که نبود ایب نداره یه نگاهی یا ما تونستیم بکنی خیلی فرق میکنه مراقبه اینجاست. گوشش اون بنده خدا میگفت کمی غیبت کن حال بیایم. غیبت کن حال بیاییم حالا مالک حواسه قیبتی که ممکنه به اختزای یه سلسله مسائل بشنوه رد میشه سماه استماه نیست سماعه. یعنی نمیخواست غیبت گوش کنه ولی به گوشش خورد بدش نیومد از این که راجب فلانی بد میگفتن من هم که نمیخواستم استماه کنم ولی وقتی مراقب قلب مالک حواسه میگه حتی چرا من اینو شنیدم؟ چرا به گوش من خورد؟ لذا میگن چشم. اینا رو باید بحث میکنم. چشم، گوش، دست و پاه، عرض کنم عقل، شکم، عوامل شهبات جنسی فرج. مجموعه اینها هشتا شمرده میشه. میگن هشت در جهنم از اینجا شروع میشه یه در جهنم از طریق چشم برای ما باز میشه یه در جهنم از طریق گوش باز میشه یه در جهنم از طریق شکمپرستیه یه در جهنم از, جهنم از طریق شهوت جنسیه یه در جهنم از طریق دستها و اقداماتی که با دست میکنیم یه در جهنم از طریق پاها و نحوه یعرکتی که بر اساس پامون میخوایم تو عالم انجام بدیم برای ما مطرح میشه حالا تو روایت بد میخونم مالک این حواس هستیم یا نیستیم چی میتونه مالک حواس باشه؟ امام آهادی علیه السلام الغلبه مالک لِجَمِعِ الْحَوَاسِ حواس برای جاسوسی قلبه؟ خب فرمونده باید قلب باشه قلب است یا غیر خدایی؟ اگه قلب خدایی نشد حواس تو چی کار میکنه؟ تو مسیر غیر خدایی میبره ولی اگر قلب خدایی شد حواس رو تو مسیری میبره پس باید مواظب قلب باشیم مراقبه از طریق مراقبه قبل بی قلب بیای مراقبه حواس سمون داشته باشیم